الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف ورحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصيغ به إن حديث قبل يواسي هذه صحبة قطبا وسخنة قطبا بدون كردة در روز القيامة بدون مترجم رو در رو خداوند در روز قیامت با بندگانش صحبت میکنه در صحیحین و ما باید این احادیث را سر شش بذاریم و قبول بکنیم و ایمان و باور بکنیم <تبان> قال والا ایمان وان لرسول الله صلی الله علیه و سلم حوضا یوم القیامه ترد عليه امته, أمته عرضه, مثل عرضه مثل طوله مسيرة شهر انیته كعاده نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجهن إن هارفك الآن أمام أحمد داري النقمي كوني أز أحادث صحيح نقمي كوني چنانسا در بخاري و مسلم داري حدث عبدالله بن عام رضي الله عنهما ك در شرح فرموده القدابان ميال تفاصيل من نقمشي إنا عطيناك الكوثر كوثر رودياس در بهش كأز أم روض سرازيز مشي آبش بحوز كوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم این کوثر و عنوان فرعی از اون آبی که صرازیر میشه از بهشت خداوند به اون رود کوثری که صرازیر میشه به حووز رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در سر زمین هر پیانبری برای خودش حوزی داره هر پیانبری برای خودش حوزی داره حوز رسول الله صلی اللہ علیه و سلم آبیت از کجاست؟ از, از بهشت خداوند رسول الله صلی علیه و سلم حوضی مسیره و شہر مسیر ماه الله أعلم بيادات سوا وزواياه سوا يعني طول عرضش بهم مصابية انجا أحمد محمد يقول عرضه مثل طوله مسيرة شهر رسول الله مفرما وزواياه سوا وماءه أبيض من اللبن آبشم از شير سفيتره وريشه أبيض من المسك وبوش از مسك یا از مشق قدمه بويش خوشتر وخشبوتره وكيزانه كنجوم السماء كما يقول آنيته یعنی اون هایی که با آن از اون آب خورده،, خورده میشه یا نوشیده میشه به اندازه ستارگان آسمانه خدا میدونه یعنی چقدر مسلمانان که از اون آب میخورن می نوشن در روز قیامت و باره رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن که اینقدر خداوند ظرف گذاشته به تعداد ستارگان آسمان و کیزان و کنجوم السما من یشرب منه فلا یظمأ ابدا کسی از اون آب بنوشه هیچ وقت نمیشه بعضی جاها میبینید بعضی از بوق معروف قرائین سر دعا دعا میکنن پروردگار را به ما از حوز کوثاب بنوشان از دود دست شریف مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم شیخ غزان رحمه... الله تشهد بر الله می بیاد چنین چیزی ما در روایت نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلام ازن آب با دست خودش میدن که مسلمانان بنوشن این چه چیزی ما نداریم بارد نیست اون چیزی که در دارم خصوص روایتو مدین اینه که کاسه ها و ظرفای است خداوند گذاشته به تعداد ستارگان که هر کسی کاسه خودش رو برداره از اون آب بنوشه کسی از اون آب نوشید اون آب خوشبو اون آب خوش کسی از اون آب نوشید دیگه هیچ وقت تشنه نمیشه این کرامتی هست این تکریمی هست از خداوند برای بندگان مؤمن بندگانی که تسلیم امر خدا بودند بندگانی که دیندار بودند نه اهل بلعت بودن چون گفتیم اهل بلعت از این حوز رانده می شوند صحابه سوال می ای رسول خدا علیه توی که برسر این حوز ایستاده و امتت را وارد این حوز میکنی، از کجا میدونی که اینها امت تو هستن یا امت تو نیستن رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایم می فرماین، از آثار بزوی اونها دست و صورتشون نورانی هست از آثار بزوشون فهمیده میشه. این توصیه هست بنما خوندن چون انسان وضو میگیره برای نماز این کرامتی که هست خداوند داده به مؤمنین که چهرهشون نورانی میشه به خاطر نمازی که برای خداوند در دنیا خوندن اون روزی که انسان حش میشه از قبر بیرون میاد که لقطه اریانه که عایشه رضی الله عنها میگه یاد می آیا آیه اون روز مگه شرمی نیست انسان ها از اون دیگه شر نمیکنن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اون روز بزرگتر از این حرفا اون روز روز عظیمیه که انسان دیگه توجهی به عورت و شرمگاه هم نداره. کسی دیگه نگاهی به لباس و غیر لباس نمی کنه، نگاهی به عورت نداره. دیگه اونجا دنیای تکلیف نیست که شخص به خود برای خودش گناه جمع بکنه. بله اونجا هست که مؤمنین نجات می یابند از صحنه محشر وارد حوضه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن. هر پیامبری هم شوزی برای خودش داره. اصحاب که وارد حوضش منهای که لیاقتشو دارن. نه اونهایی که لیاقت این حوض رو ندارن همون تو که امام محمد فرمودن کسانی که به حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان ندارن از خدا میخواهیم که محروم بشن از این حوض از این آب هیچ قطره‌ای ننوشند در روز قیامت ما از خدا می‌خواهیم ما پروردگار احادیث رسولت را شدیدی باور کردیم قبول کردیم و بهش ایمان, ایمان وردیم، آوردیم را از اون آب ما رو بنوشان معتزله مثل همیشه میگن احادیث فقط اگر متواتر ما قبول میکنین این احادیث پیششون متواتر نیست با عقل در نمیاد چون با عقل در نمیاد نمیدونم و این مسائل مسائل غیبی هست و احادیث متواتری درباره اش نیامده ما منکرش هستیم این خلاصه نا بیشتر این مسائلی که الان امام احمد داره نقد میکنه با خاطر رد بر معتزله الان بحث رؤیت خداوند بحث نمیدونم عذاب قبل بحث حوز رسول الله این اشیا معتدل و اطبعت از خوارج از عبادی و غیر همه اونها انکارش میکنن قالوا والا ایمان بعذاب القبر عذاب القبر حق عذاب القبر حقه خب معتدلات میگن میگن ما قبر باز میکنیم عذابی توش نمیبینیم چه عذابی هست شما برید قبر قبرستون بری بگین ببینید کی عذاب میکشه ببینید حرفشو نیه خب ولی ما چی میگیم میگیم رسول الله صلی الله عليه و سلام خبر دادن و خبرش هم حقه دنیا دنیای غیبی است دنیای حسی نیست دنیای برزخه هم ما بین دنیا آخرت. کی و آخرت چی میشه رسول الله صلی الله علیه و ما خبر دادن مؤمن گوشش قبض میشه کافر هم روحش روحش قبض میشه روح مؤمن مثل آبی که از کوزه میچکه کما یقر المؤمن فی الثقاب بعد روحش کفن میشه چطور روح کفن میشه الله علیه روح کفن میشه با بوی خوش و کفن پوشیدی دست به دست مگاه که با بهترین نامم صدا و به احتن ثاعاحدی که ینادا به دنیا با, با بهترین نام صداش میزنن میبرن آصدر آسمان باز میشه. بعد از اونجا را خدام میگیرد اکتوب و کتاب هگی فرحللی ای اسمو در بهشتیان علیین الین در پرونده علیین بنوویسی بهشتیان بزرگواران بزرگ نوشته میشه بعد روش برگرد نوشه در قبل بعد منکارونکی میان بر سرش میگن پردگار پر کی بود دین چی بود پامبر کی بود. جواب میده بعد اونجا هست که رسول صلی اللہ علیه و سلم میفرماین خداوند میگید دری از درهای بهش به قبر مؤمن باز بشه و از بادها و نسیم بهشت در اون قبر وزیدی میشه بله این هست که امام طبی رحمه الله میگید جای روح و جسد خوشی میبینن روش و جسد جای خوشی میبینن مثل الان دری از درهای بهشت در قبر باز میشه و جایم روش به تنهایی در نعیم خوشی هست خارج از جسد چنانچه رسول الله صلی اللہ علیه و می فرمایم ارواح المؤمنین که طیر یعلق من شجل جنه ارواح مؤمنین همچون پرندگانی از میوه های بهشتی سر درختان بهشتی پرواز میکنن و از اونجا از اون میوه ها میخورن و ارواح في فی اجواف طیر برای شهده ارواح فرندگانی مسخرن ارواح مؤمنین خودتون مثل پرنده شهده نه کسانی ارواح بقول مر پرندگانی هستند گناهارو متنقل بکنند. این مزیتی که شهدا دارن که از میوههای بهشت بنوش از میوههای بهشت بخورن از آب بهشتی بنوشن ارواح جای نعیم در دنیای برزخ بر روح تنها حاصل میشه و جایی هم در چنانچه در حدیث براب مناظر داریم بر روح و جسد وقتی که خداوند دستور میده دری از بهش باز بشه و اما مؤمن و اما شخص کافر و فاسق و دونهکار رسول الله علیه و سلام میفرمای روح چنان کشیده میشه مثل پنبه ای که از خار بیرون کشیدیمش چطور تکی تکی میشه اون روح تکی تکی میشه با کفن جهنمیان کفن میشه با نام صداش میزنن در اسم لا تفتح لهم رسول این آیه راست میخونن لا تفتح لهم ابواب درهای آسمان براشون باز نمیشه حتی یل جل جل جمل و في سم القياق اگر تونیش چطور از سوراخ سوزن انگور بر بکنه برای در آسمان باز میشه ولی هرگز چطور از سراغ سوزن نمیتونه عبور بکنه بله در آسمان هرگز باز نمیشه و خداوند میگه پرونده فرنده را در در جهنمیان در سجین بنویسید پرونده جهنمیان سجین در اون فرنده نوشته بشه بله بله حدیث براب بن بعد از همونجا روح پرت میشه به داخل قبر منکر و نکر هم سوال میکرسن من ربو میگه ها هن ها هن لا ادری اونجا هست خداوند دستور میده درهایی از جهنم به طرف باز بشه و مقبور اون میت با روح و جسدش عذاب میبینه بله و جایی هم روح منفصل از اون جسد عذاب میبینه چنان چه خداوند در فرعون و اتباع فرعون میگید شب غدوبا روز عرضه بر چی میشن؟ عرضه بر عذاب خداوند هرچند که بدنش نجات یا و یا منو که بدنش بدن شجادیو یا گردن کردن که خداوند قادر بر این که بدنی در برزخ براش مسخر بکنه که با روح و جسد و یا اینکه ارواح اونها را عرضه بر جهنم بکنه همه اینها نصوص و نار و عرضون علیها و دیگر نصوصی که الان بموده حقه ما نمیتونیم درکمون نمیکشه دنیای برزخ چطوره که ما در قبل باز می کنیم دری از بهش نمیبینیم دری از جهنم نمیبینیم چطور این درها باز میشن و یسلم تسلیما و تسليم باشين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في صدحرجا مما قضيت احتطت حرجنا كن در مقابل اين نسوس و يسلم تسليما و كاملا تسليم باشين اين در اين سوره اونها مؤمن غير اين سوره ایمان اونها واقعي حقه و رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر روزي از کنار دو انصار عبور میکنن ميبینن که در عذابن دو فرأى أنهم يعذبان دروات الرجلين من الأنصار فرأى أنهم يعذبان فقال ما يعذبان من كبير بل إنها كبير وأما أحدهم فكان ليت سنزهم من بول ودرواتهم كان ليت ستر من بول بول وأما الآخر فكان يمشي بالنمي وروايا يمشي بالغيبة يكشون أهل غيبته نمومي ودقاريهم أهل إن قدش الفاق نمي شو سأت نجو سأت نجو سأت فسوما خبر در بيده إن هذا نفر عذاب بك عذاب قاد حقه فرا ان هما يعذبان رسول الله صلی الله علیه و سلم عذاب میکشن پس عذاب قبر حق ما نمیبینیم خداوند مخصوص قرار داده اونو سست کرده از ما حجابی بین ما و اون دنیای برزخی قرار داده ایمان بخاطر همینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون یاد دادن که در سر نمازهای فرضمون آخر نمازمون به خدا پناه ببریم از عذاب قبر و فتنه قبر یعنی فتنه قبر فتنه قبر وقتی که مرد در قبر میخوابن بعد بر سرمون ما تناهم بقولهم بخدا من عزاب القلب، بخود رسل الله الله حق. حتى أنكما بتشوفوا خدا من، شيء ذين يبين قلبها وقلب الصناعة، نبشو كلهم يكشف ذين يبين. قال رحمه الله وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به، ما بذيف ایمان بیان به فتنه تطبیق فتنه قادره چرا از در حدیث برا الله, الله عليه وسلم بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق استجیر بالله رسول الله, صلى الله عليه الله علیه بالله pano be bari جوار خدا رب قاید از خدا بخاید خدا تناهیتون عذاب عذاب در ایمان داشته باشید بعد مراد خداوند اونطوری که خداوند از خدا می که ما را عذاب نده ذره عذاب من تحمل عذابش نداریم تحمل یک درد دنیا رو نداریم یک آتش دنیا رو نداریم دیگه بیام عذاب خدا در قبر تحمل بکنیم پروردگار ما را پناه بده از عذاب قبر از عذاب از جهنم از خشم از تادیدورا تحمل عذابش رو نداریم قال کیف اراءت والايمان بهی والتصديق بهی بعد اینها ایمان داشته باشیم و تصدیق بکنیم باور بکنیم قال رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله تعالى وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به ما شفاعتنا صلى الله عليه وسلم كانت دارين يكشفات عزم دارين كبادة هر عزانی که میشدیم این دعا رو میگونه اللهم رب هذه دعوت التامه والصلاه قائما اتي محمدا الوسيله والفضيله درس خدا میگوین که اون مقام عظم شفاعات شفاعت که تنها جایگاه پیامبر خود محمد صلی الله علیه از خدا میخواهیم کی اون جایگاه حدیث شفاعت باذه در صحیحه تمامی خلای در صحنه محشر جمع میشن بعد از هزار سال میرا پیش آدم میگن ای ادم تو را با دست خودت کرد ایت مزیتی داری بر دیگر مخلوقات، اونم با دست خودش خداقی را قلقت کرد. شفاعتی کن، ترادی بر برقا بشه، اعمال وزد بشن. حساب و کتاب بشه، آدم میگید اولین گناه را من مرتکب شدم، بری پیش نوح. خداوند دعاش و مستجاب کرد و قومش و نابود کرد. بری پیش نوح، نوح میگید من چیزی از خدا خواستم که نباید میخواستم، بری پیش ابراهیم، خلیل الرحمن بری. ابراهیم من گفتم. بری پیش موسا, موسا میگه من کاری کردم که نباید میکردم و گناهان رو یاد میکنه بعد می دیگه بری پیش عیسی عیسی هم میگه ایراد پیش رسول الله صلی الله علیه علی و سلم بعد اونجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنن که که اجازه بده که تقاضاها اوورده بشن و حساب و کتاب بشن مخلوقات این شفاعت عظما هست سوالی که اینجا مطرح میشه الان قضیه این که رسول الله صلی الله و سلم دارای مقام محمود باشه این مقام عظما شفایت عظما که بندگان همه خلایق جمع بشن دست به دامنش بشن که ای پیامبر خدا برو از خدا بخواه که خواسته ما رو برآورده بکنه الان این چیز حاصل حاصل نیست این شدنی یا شدنی, شدنی نیست خدا وعده داده, داده که برای رسول باشه تهجد به نافله ت لک حسان یبعثک ربک مقام. عصال خداوند بر چیه با مقال محمود حقه بر رسولا وید خب پس بعد از هر ازان ما از قدوان میکنیم آفی محمد؟ عبادته، عبادت معکول نیست عبادت تعبد، اذکار، دعاها، نمازها، برخلاف عادات و تقالیب و اعراف پس این شفاعت عزمه هست، عزم و شفاعت هایی که داریم اینجا یاد میکنه معلی به شفاعت هایی که خاصه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر پیامبران هم دارند ولی خب یک نور شفاعتی که رسول الله داده شده برای رسول الله صلی الله از زلم شفاعت برای گناهکارانه کسانی در جهنم سوزانده شدن شدن مثل زغال فخته شدن سوزانده شدن بعد رسار و فهم دنیستند به زغال شدن فیوم رو به هم نهر نهر علی ابوابی جهنم رسول الله شفاعت میکنه که او خدا آنها را بیرون بیاره و در رودی از رودهای بهش در کنار در جلوی در بهش در اون آب شسته بشن کما جاء في همونطور هم در حدیث اومده که بعد اونها سبز میشه یک درخت سبز اینهایی سبز میشن میروین زنده میشن بعد از اینکه پخته شدن و سوزونده شدن و سیاه شدن این یک نوع شفاعته چطور ما علما ما قبول داریم معتزله میگن خیر میگن میشه یک شخص گناه کبیره انجام بده وارد جهنم بشه و بعد بیرون بیاد معتزله چنین چیزی ندارن میگه یا جهنم یا بهشت شخصی والد جهنم شد دیگه بیرون شدنی نیست نمیتونه بیرون بیاد دیگه چیزی به اسم سراب نیست که بیاد بالا روی كل سرات دوباره بیفته دوباره تا برسه به به شهودان نه سراب نه میزان نه حوز هیچ کدومشو قبول ندارن چی قبول دارن؟ این اهل سنت عقل سلف واضح, واضح واضح نیست اهل صلاح مبنوس واضح مبنوس واضح, واضح نیست ولی بعضی از مادان ها یعنی باید به خودشون این جسارت بدم بگن که نه واضح نیست هر کسی میتونه سلفی باشه هر چیز سلفیات فکر کنم اگر اینها بهشون اجازه بدن حتی بودایی و کمونیسم هم وارد سلفیت میکنن نه و سلفیتی واضحه سلفیت, سلفیت احادیث رسول الله صلی و آله تمسک به اون احادیث اثاریه چنان که خداوند نزد من خواسته بهش ایمان بیاریم و باورش بکنیم تصدیق بکنیم باور بکنیم بگیم کلام کلام رسول الله از خودش نیست بحیه رسول, الله که،, رسول الله که از خودش خبر نمیده این اولا امثال مسائل اجتهادی که نیست اجتهاد بکنه مسو الوهیه، وحیه, وحیه. احترف خداوند اندازه بش، وه میشه و بهمون به نقد داره میکنه و خداوند بهمون به دستور میده که از واسو واس الله استفات بکنیم و تقدم و پیشگیری نشویم، لا تقدم بینای الله و رسوله، تقدم فی شیء نکونید. بعضی یک شخص میاد میگه جسارت میده میگه نه با عقل من جور در نمیاد. معتزله و خارج قائل بر اینن این که مرتکب کبیره کافره. احادیث شفاعت اینکه در شأن گناهکاران اومده، با خاطر گناهمارشون سوخته شدن. این احادیث رو قبول ندارم میگن خیر صاحب مرتکب کبیره چه قاتل چه زانی همه اینها خالد و مخلد در جهنمان به هیچگاه از جهنم خدا من بیرون نمیان حدث شفاعت اینها رو رد میکنه میگه که اینها جز آخرین دسته هایی که وارد بهش میشه این اشخاص مثل زغال پخته شدن بعد شفاعت میترسه در حق اونها و اونها خداوند اونها را خارج میکنه از جهنمش و اونها رو در اون آب میشوره آب بهشتی قدات عمر وارد بهشت اونها خدا... رو وارد هشت خودش میکنه این یک شفاعته از جمله شفاعتا که اومده شفاعت خاصه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم که به ابو کافره ابو طالب دعا کرده خداون عذابشو تم بکنه تا پاهاش در در جهنم باشه جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می که جوجه سرش میره میاد از شدت عذاب این شفاعت خاصه ما بهمون اجازه داده نشده که شفاعت برای کفار بکنیم بلکه خداوند این استثناء را بر اساس بر اساس محمد صلی الله علیه و قرار میده شفاعت های عامی دیگری هست هر پیامبری شفاعت میکنه برای کسانی که بخون اشخاص صالح هم همینطور شفاعت میکنه ملائکه هم شفاعت میکنه این شفاعت ها هست که هیچکدوم از این شفاعت ها رو معتزله و خوارش تابور ندارن چون نظر اونها شخصی که وارد جهنم شد دیگه نباید خارج بشه حالا قبلا من تو حای این بحث به اشاره کردم بحث اما یختن مؤمنا متعمدن تو آخر آیه که بهش استناد میکنن که خالد مخلد در جهنم و به حدیث اسامه استناد میکنن ان الله ابا ان یغفر للقاتل و دوران ابا ورجیده از اینکه قاتل رو ببخشه و بیامرزه ما در نصوص و کنار هم دیگه بذاریم این احادیث یا یالا ترجع بعد کفاره یضر بعضکم رقاب بعد من کوفر نشیدن هم دیگه نذنین این نصوص اگر کنار هم دیگه بذارین معناش واضح میشه مثلا خداوند برای قاتل خوفت ثابت میکنه نسبت مقتول فمنعف له من اخيه اثبت اخوته یا خداوند در قرآن میگه و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اثبت ایمان میکنه برای دو تا طائفه که به قتل هم دیگر اومدن این نصوص عامی که در در قران اومده در سنت هم میذونه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما لعن المؤمن که قاتله لعن, لعن مؤمن مثل قاتله چه لعن غنونه هن کبیرات غنونه کبیر نیست لعن مؤمن مثل قاتله پس هم همونطور که لا گناه کبیره هست قتل گناه کبیره است. خب حدیث اول آیه رو بگم بعد حدیث. بس حدیثی که خالد مخلد در جهنم کسی و من مؤمنن، کسی مؤمن و عمدن بکشد چطور وضعیت همین این آیه؟ ما میگیم این آیه همونطور که امام ابن قیم میگویند خالد به نسبت گناهش تا تا مادامی که هر چکه ابن قیم حرفو میزنه صحتش و مبنایش الله علیم. بر سحتش نیاز به تحقیق داره که میگوید جهنم گناهکاران جداست از جهنم کفار میگه مادامی که اون جهنم کفار جهنم برایش عصات و گناهکاران بر پاس اون شخص عذابش خالد و مخلد در اون جهنم خاص بعد از اون اون جهنم فنا میشه و فقط جهنم کفار میمونه و اون شخص وارد بهش میشه. این چیلی ما به میگه ما گفتیم توجیه ما چیز دیگه هست خالد ابدی هست در جهنم بنز به اون مقداری که خدا بند بخواد این یک و دومن بعضیا گفتن خالد اگر اگر اون قتلش سبب یعنی در اثر استحلال بده قبلا در بحث کنفرانس فرانسو این بحثو بهش اشاره کردن ولی حالا گفتم اگر بخوام بازش بگم خیلی تولانیه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به اسامه وقتی که اون شخص رو می گوشرد دیگه اشفق تن قلبه بعدا قال لا اله الا الله اقتلك و بعدا قال لا يا و رو لا اله را گفت قلبش او غاضر کرد شکایت داد. بل اسامه میگه ان الله ابا یک برای لقاته بعد اسامه میگه ای کاش من به دنیا نمی اومدم. الان نگاه بکنید اسامه رسول الله او را تکفیر کرد، او را از اسلام خارج کرد. یا اینکه نه، رسول الله صلی الله علیه و آله از حیاتش لشکری هم با فرماندهی اسامه تحویل اسامه داد. و اینکه رسول الله صلی الله علیه و بعد از اون بقول معروف میگه معذبه و سازنده شو تکرار نکرد چون گناهی بود مرتکب شده بود اسامه. اگر اونجا فعل اصامه غدت از دین بود ان الله ابا به اون فهمی که بعضیها دارن. اگر اونجا فعل اصامه او غدت از دین بود از بود گردن اصامه را هم انجا می زد. ولی غدت از دین نبود. گناه کبیری بود که اصامه ابن زید مرتکب شده بود. بخاطر همین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او را معاقبه نکرد. کسا ازش نگرفت بلکه او را توبیخ کرد و گفت قتلت و بعد ان قال لا اله الا اللہ. ورا کشی بدن که لا ایلا آفر چرا این کارو کردی؟ گفت یا رسول الله اینو که نمتوحذره او خودشو فنا میگذارد میترد از شمشیر از بخش شمشیر داشت میترد این نصوص گفتم این نصوص فعیل الله میاد اما محمد بن الله به چند تا از این نصوص اشاره میکنه این نصوص جز قسم بحث کفر که از پدر میشه به افعال جز کفر عملیه که انسان از ملل خارج نمیشه. قال و الإيمان المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والاحاديث التي جاءت فيه والايمان بان ذلك كائن بعض معتزله انکار میکنن بله نصوص نصوصی که درباره دجال اومده نصوص صریح و واضحیه و نشانه های قیامت اصلا اصلا میفرما اینی که اسم دجال دیگه بر سر منبر ها آورده نشاز نشانه های قیامت دجال میاد و بین دو تا چشاش نشسته کافر شیخ خلبانیم رحمه الله کتابی در احادیث، کل احادیثی که درباره در مدر رو جمع آوری کرده در یک کتاب، احادیث متواتره، تواتر معنوی، روایات زیاد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم معتزرین مطبوعشون، پیروان معتزله، خلاص ما باقیش دیگه خوارج همین شامل میشه همه هستند، عقلانی ها دیگه کلا کسانی که احادیث رو قبول ندارن، دجال رو قبول ندارن قالوا والایمان و ان المسیح الدجال خارنه کنید چرا معتدل مشکل دارن؟ مشکلشون اینه که بیگن احاقی تا مادامی که متواتر نباشه ما در مسائل غیبی نمیپذیریم همش مردوده این مسائل غیبیه نیومده ما قبولش نداریم تنها مشکلشون اینه که مسئله غیبیه و ما نمیتونیم بپذیریم مگر با نص متواتر و این نصوصم متواتر نیستن تواترش لفظی نیست تواترش لفظی نیست تواترش معنویه قبول ندارن تواتر معنوی رو قبول ندارن کی متذله؟ نه به معروف همونطور که این میگفتن نسوس متواتر رو اگر حساب کنن عدد انگوشتانم نمیشه. نستی نیست که اون تواتری که اونها شرط گذاشتن نستی نیست که بر مراد اونها به تواتر برسه هیچ نستی نیست یعنی بر مراد معتقدی هیچ ناس متواتری نیست. اون چیزی که آنها شرح که ده طریق باشه در هر طبقه ده تریک دیگری شنیده باشه. از اون بعدی هم ده نفر شنیده باشه در هر طبقه با ده تا ده تا هم تکرار بشه. چون یک ناس دارم بیارید این ده تا ده تا در هر طبقه از هر رابی ده نفر، بعد از اون رابی ده نفر دیگر بشه نه؟ شما نسی داری؟ چنین چیزی ما نداریم. می‌متأسفم این چنین چیزی دعای دارد. شکن من تا متواتر د نوکری در قرن اول و دوم چیزی به اسم احد متواتر نبود بعداً متکلمین آمدن این اصلاح را آوردند بعد در مصطلح حدیثی یاد شد از باب اینکه جواب معتزله رو بدن نه از که اینکه تقریر و تایید داشته باشن بر با تقسیم حدیث به آحاد متواتر ما چیزی به اسم احد متواتر اون چیزی که در اصول اوث بشه حتی در یک اسناد درسه باشه میگیم با سر و چش قبول داریم قالوا و عیسی ابن مریم السلام ينزل فيقتله ببابل الدن یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر جداً عن نزول عيسى عليه السلام عند شنهاي قيامته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يود مثلاً قعدوا ستة بين يد الساعة موتي ثم فتح بيت المغمس ثم موتان يأخذوا فيكم تفاحات الغنم ثم يفيض المال حتى يحط رجل مئة دينار في يزل بعد سند على الخمسة وأثر حديث مياد. اول و دو مستوان شورم فرنیوش واضحه مرگ منو، فتح بیت المقدس و مال نمیدونم زیاد میشه و به یک کسی تصدر درهم بیدن قبول نمی کنه سپس آخرش ثم تتطالحون الروم. این قضیه هنوز روخ نداده از نشانه های قیامات صورش با روم، ثم الروم. روم فیغیرون، فیأتونکم تحت ثمانین غایه و تحت كل غایه جنده. عشر 11000 جنده سپس اونها پوش اشخاص پرچم میان لوا پرچم و پشت هر پرچمی هزار ارتشی لشگری نتی به یک میلیون شد ارتشی لشکری باشن که کہ اومدی باشن به جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دنبال این حدیث یاد میکنه کہ لشکر که از یمن بلند شده رفتن به شام بعد از اون مسلمانان جمع میشن اروپا را فتح میکنن مہدی در یک شبانه روز به اسم محمد و عبدالله در یک شبانه روز اصلا میفرماین ساخته میشه اونجا هست که بحث صلح بارو میشه بعد اونا قلد میکنن بعد مسلمان ها بعد از اینکه روميها قلد میکنن بعد از صلح مسلمان ها میرن اروپا را فصل میکنن بعد یک شخصی بلند میشه صلیب اونها رو خرد میکنه اروپا فصل میشه بعد از اونجا صدا زده میشه ندا زده میشه که دجال خارج, خارج شده هنوز دجال خارج نشده، بعد مسلمان ها برمیگردن بعد اونجا هست وقتی که مهدی علیه السلام محمد ابن عبدالله میاد نماز میخونه در شام عیسی از آسمان میاد فاین در کنار هم مناره بیگاکی و در بابلود میاد فاین در سرزمین شام پوش سر محمد ابن عبد الله مهدی نماز میخواد جلوام نمیره چون یکی از امت محمد صلی الله علیه و سلم پوشش مهدی نماز میخونه معمولیت شام اینه که دادجار رو سر بزنه و بعد میره به سرزمین شام و دادجار رو در اونجا آنجا و قربانی میکنه سبحان الله و و صلی الله محمد و علی محمد